بسم الله الرحمن الرحیم ازان در لغت به معنای اعلامه در دین اسلام منظور از ازان کلمات مخصوصیه که قبل از نمازهای واجب یومیه گفته میشه چرا بهش میگن ازان؟ چون که معزن با گفتن اون کلمات با صدای بلند وقت نماز رو اعلام میکنه ازان از اهمیت خاصی برخورداره یکی از ابزارهای تبلیغی برای دعوت به اسلامه پیامبر عزیزمون میفرمایند ان الشیطان اذا سمع به بالسلات حربه شیطون چون صدای دعوت به نماز و بشنوه میگریزه و در جای دیگر می‌فرماید: موزن تا جایی که صداش میرسه و نگاش کار میکنه به همون اندازه آمرزیده میشه شاید برای سال برای شما شاید برای شما سال پیش بیاد فرق ازان با اقامه چیه اقامه به معنی برپاداشتن منظور کلماتیه که قبل از هر نماز واجبه یومیه گفته میشه اما کمی تفاوت با عزان داره در اقامه الله اکبر ابتدایی فقط دو مرتبه گفته میشه نه چهار مرتبه الله پایانیشی فقط یک بار در اقامه بعد از حیاق خیر عمل عبارت چی گفته میشه قدقامت صلاح تو جدولی که نشون داده میشه دزییات قشنگ مشخصه المصدا موفق باشه